سلام دوستای خوب بازم ما در مورد خوردار نیک میخواییم صحبت کنیم و اینکه چطوری سالم خاری رو داشته باشیم و این بار قراره که یه مقدار سبکمون رو تغییر بدیم و بیایم از به قولی تستمونیال هایی که وجود داشته از خوردار سالم یا سبزیجاتی یا گیاه خاری هم من هم جماعی محین قهرمانی گفتگون کنیم با هم دیگه تجربیاتمون رو به اشتراک بذاریم و اینکه بگیم چطوری تونستیم شرطی سازی هایی که در ذهن ما بوده و زائقهی که در ذهن ما تربیت شده رو درستیم تغییر بدیم و از خوردار ناسالم به سمت خوردار سالم پیش بریم سلام جامعه قهرمانی باز هم در خدمت شما هستیم و ممنون از همکاریتون و پیشنهاد خوبی که در مورد این پادکست دادین سلام عرض میکنم خوشحالم که یه بار دیگه در خدمت شما هستم و امیدوارم در این پادکست بتونیم با همراهی همدیگه یک بحث کاملی رو دنبال کنیم و به نزایج خوبی برسیم همین طور هستش ما تو پادکست قبلی صحبت در مورد این بود که ما چطور میتونیم آمادگی روانی ذهنی برای خودمون ایجاد کنیم برای این شیفتی که قرار از خوراک غیر سالم به خوراک سالم سفر کنیم و زندگیمون رو توی این سفر چطور باید پیش ببریم مثلا خب شاید یکی از موضوعاتی که برای خیلی یا سوال باشه اینی که مدتی گیاه شدن یا مدتیه که رو آوردن به سمت گیاخاری یا خام گیاخاری اما برحال وسوسه هایی هست و این وسوسه ها برای همه هست به واسطه حالا طعم به واسطه بو به واسطه مزه، به واسطه اون احساسی که بعد از اون خوردن حالا چربی ها و گوشت ها و اینا سراغ آدم میاد خب یه احساس لذت بخش خاصی داره اما خب در این اینکه ما وابسته هستیم به اون احساسات خب هیچ شکی نیست منتها اینکه چطوری با از اون احساسات بتونیم از وابستگی بیایم بیرون و آروم آروم ذهنمون رو و منطقمون رو در کنار احساساتمون و رفتارهای ناشی از احساساتمون قرار بدیم بتونیم بین این دو تا تعادلی برقرار کنیم و اینکه اساسا بریم به سمت اینکه درک کنیم و بتونیم خوراک سالم رو اضافه کنیم بیاریم توی زندگیمون و آروم آروم خوراک ناسالم رو بزنیم کنار و جاش رو با خوراک سالم پر کنیم حالا در مورد همین بحث مثال هایی هست که مثلا من رفته بودم یه عروسی و به ما اونجا خیلی تعارف میکردن که آقا شما حتما باید بخورید در اگه نخورید ما ناراحت میشیم و اینا. من یکی از چیزایی که برای خودم بود این بود که مالا انتخابم هست که حالا یه, یه کباب یا یک جوجه ای رو بخورم یا انتخابم نیست و اینکه از طرفی تازه وارد فضای گیاه خاری شده بودم و چیزی که برای من خیلی مطرح بود همون تم و مزه و بو و خوراکش به عنوان قسمتی از تفریح، توی عروسی همون خوردن و لذت بردن از خوراکیا هستش من اولین بار این کار کردم و خوردم از گوشت و اینکه خب همونطوری که شما گفتید یه مقدار برای خودم سرزنهش و به وجود اومد ها اینطوری باز خودم رو توضیح کردم که اوکی من الان یکم این کاری کردم که به نوعی شاید اگر نفسم یا کودکم رنجیده نشه حالا من یکم هم گوشت میخورم منتا دیگه زیاده روی نکردم در حد اینکه ما ازو تامو تست رو داشته باشم اما در این حال تجربه‌ایم که کردم بعدش این بود کاملا اون حس سبوکی که من تو فاز گیاخواری دارم اون حس سبوکی برای حداقل 8 9 ساعت 10 ساعت از من فاصله گرفت این گوشت رو که خوردم از 1 2 ساعت بعدش این حس برای من اومد تا 7 8 10 ساعت هم برای من این بار احساس انرژی یعنی سبار سنگینیش هستش که حالا اینو نمیدونم چه جوری باید توضیح بدم چون توضیح دادنی نیست ولی این حس کردنی هست یعنی احتمالا شما اینو رو حس رو کردید اگر از گیاخواری یه هر مثلا گوشتی چیزی خورده باشید حالا اگه شما مثالی دارید مثال شما رو بشنمیم راستش هر چقدر که بعد در شروع گیاخواری واقعا یکی از بزرگترین مشکلات من همین مسئله رابطه اجتماعی بود و در مهمانی ها و عروسی ها چون خب من خیلی با تو این راه و یه جورو نمیخواستم یعنی مثلا دیگه فاسده بگیرم ازش خب در ابتدای امر من چون نسبت به گوشت دیگه خیلی انگیزه قوی داشتم که یه جورو نخورم و یعنی علاقه کلن نداشتم بخوردنش یه یعنی جورو دوست نداشتم مثلا هم به خاطر بحث او غیوانات همین که کلن تعمش دوست نداشتم در مورد گوشت من کاملا آمدن موفق موافق باشم و در مهمونی ها هم که میرفتم خب من دیگه از تصمیم گرفتم از همون اول به همه اعلام کنم همه بدونن که من رژیمم رو تغییر دادم که حداقل این رو بی‌حرمتی به خودشون تلقی نکنه فکر نکن من مشکلی با اونها دارم که نمیخورم بدونن که من این بوده سبک زندگیمه و دلش کاملا شفافه خب این در وحله اول باعث میشد نیویسه این مخالفت ها و مقاومت ها و خیلی اصلا تحجب میکردن چون اصلا نمیدونستن قضیه چیه و خیلی کنجکاف بودن که بدونن منطقه برحال به هر سختی که بود من دورلت مثلا بگذرنم اما خب مثلا برای من که میخواستم خام آخار بمونم و خود خب در مهمانی ها غذای پخته بود حالا مثلا بعضی جاهتی می رفتیم مثلا نمیدونستن اون ابتدا که خام آخاری چیه؟ تفاوتش با گیاهخوااری چیه؟ خب میزبان به زحمت میافتاد و برای من یه غذای جلوگانی اصلا درست میکرد گیاهی که خب اونجا دیگه من دیدم که یک بار حالا میتونم کوتاه بیام و حالا دیگه سبک سنگین کردم با خودم هر که باز هم مثل شما که تجربه سنگین شدن و بعد از خوردن غذای گوشتی رو داشتین منم هم همین تجربه داشتم و برای مثلا چند ساعت بعد از خوردن اون غذای پخته که معمولا خیلی چر درستش میکنن که خوشمزه در بیاد یه مدت موقتی من احساس سنگینی داشتم احساس راحتی نداشتم که خوب این خوشبختانه گذراست اگه انسان دوباره برنگرده با عادت قبلی ولی یه مشکل بزرگ که این وسط هست در واقع علت اصلی این که تاکید میکنیم هیچ جوری ناپریزی نکنید انسان وقتی به چیزی سالهای سال عادت داشته و حالا می‌خواد عادش پاسا بده خیلی آسیب پذیر میشه یعنی دوباره یک بار مثلا بخواد امتحانش کنه دیگه نخوره اینکه دفعه بعدی اگه خود جود خودش رو بگیره سخت میشه یعنی اون اراده انسان رو یکم ضعیف میکنه این قضیه معمودن ولی خب انسان ممکنه یک شخصی بتونه یک راهکارهایی پیدا کنه یک تکنیک‌هایی باشه که بتونه خیلی راحت با این قضیه کنار بیاد و بتونه خیلی راحت خودش رو کنترل کنه البته کنترل هم خیلی وقت‌ها سرکوب هم راه خیلی وقتا یک چیز آزاردهنده است که همین باعث میشه که افراد بعد این مدت به اصطلاح کم بیارن و رها کنند. اما اگه تکنیک هایی باشه که بشه آدم راحت تر بتونه جوی نفس شروع بگیره به اصطلاح میتونه خیلی کمک کنه در این موارد همینطوره در چند ماه اول تغییر تغذیه این حساسیت زیاده حالا ممکنه یک شخصی بعد از گذشت مدت طولانی راحتر بتونه خودش رو کنتبه کن. اما در وحلی اول معمودا سخته و خود من در اون 6 ماه اول تغییر تغذیرم تونستم تقریبا تا حد 80-90 درصد عددم شاید درست نباشه که بگیم ولی تونستم تا حد خیلی زیادی حفظ کنم خودم رو و همون عادتی که می‌خواستم تغییر پیدا کنه و موندگار بشه، دونستم تا حد زیادی موفق باشم ولی باز هم موفقیت مطلق و کامل و 100 صد درصدی نبود و اگه الان به اون موقع برگردم سعی میکنم حتما بیشتر روی این مسائل ذهنی و شناخت ذهنی و تکنیک های کاربردی این حوزه کار کنم رو خودم. درسته. من در این مورد یه چیزی به ذهنم رسید. آدم‌ها کلاً انسان وقتی میخواد تغییری ایجاد کنه از هر پترنی به پترن دیگه ای یا از هر پارادایمی به پارادایم ای این اتفاق براش می‌افته که به یک درکی می‌رسه یعنی یک مطلب یک مفهوم شاید حالا انتظایی شاید هم انتزائی هم عملی و علمی اون مفهوم براش کاملاً درک میشه و کاملاً اون موضوع و رو مطلب رو می‌گیره و متوجه این میشه که چه مزایایی براش داره یا چه ضررهایی براش داره یا این از پله ای به پله بی رفتن چه تغییرات کلی رو برای زندگیش میتونه به ارمقام بیاره یا متضررش کنه تو زندگی یکی این که ما این درک رو باید آروم آروم بهش برسیم همون که دیتا سالم بدیم به ماشین بدن که بدن هم خروجی سالمی به ما بده حالا های مختلف و تو سبکای مختلف تو کشورهای مختلف ما اینو میبینیم این یه قسمت داستانی، یه قسمتش این که خب حالا من بیام از بیرون، یعنی من یه جا میرم از درون یه موضوعی رو آندرستاندینگ میشم و درکش میکنم، میام متجلیش میکنم تو زندگی بیرونم. یه زمان من میام از درون راهکاری ندارم ولی یک چیزی به من حس اینو میده که خب من اگر این کارو بکنم به نظر بهتر میاد و حالم بهتره. پس باید خودم رو مجاب کنم که این کارو انجام بدم و تو انجام این کار متعهدانه و مسئولانه پیش برم. ما تکنیکی داریم توی بحث در واقع مدیریت خشم این هستش که میگیم به بحث اینکه که شما متوجه شدید که عصبانی هستید و خشمگین هستید و قرار خشمتون رو به یک موضوع و یا اکت و اکشن یا به نوع خشمتون موتیویشن بشه برای این که به اکت برسه ما استاب میکنیم و سر رو بر معمولا اگر چشم دو چشم هستیم با کسی یا با موضوعی سر رو باید برگردوند و جای دیگه ای رو نگاه کرد و در این حال از شماره سی یا از شماره ده به صورت معکوس می‌شمریم و میاییم تا صفر و اگر لازم بود باز این رو می‌شمریم و باز میاییم تا سی یا ده و اینکه اونجا به محض اینکه مثلا ما اگر فرضاً فضا گوشتی هستش یا فضا خوراک ناسالم هست و ما انتخاب کنیم که خوراک سالم داشته باشیم میتونیم همین کار رو با خودمون بکنیم به محض اینکه هوس میاد ما هوسو نمیبینیم دیگه یعنی متوجه میشیم که حالا هوس کردم که مثلا چنجه بخورم به محض اینکه این هوس به وجود میاد من میتونم شیفت کنم و بگم که اوکی مثلا من به جای این چنجه از این سالاد استفاده می کنم شروع کنم سالاد برای خودم بکشم آروم آروم با خودم گفتگوهای درونی که خب حالا این خیلی خوشمزه است باید ازش یه ناخونکی بزنم یه ای بکنم یا تعمش رو تو همین هی شروع میکنم برای خودم سالادم رو میکشم و شروع میکنم با سالادم بازی کردن و اون خوردم همین که ذهن حواسش پرت میشه خودش کمک میکنه من از اون فضایی که منو داره داره مثل حالت گرداب انرژی من رو میبره و میچسبونه به یک موضوعی که من نمیخوام باهاش باشم یا اینکه در واقع اونو استفاده کنم وایش میشه که ذهن حواسش پرت بشه یا ذهن مرکز توجهش تغییر کنه و همونطور به معنی اینکه مرکز توجه تغییر کردم من دیگه با صلات مشغول شدم و پیش رفتم و یه مقدار میگذره تا اینکه من کلا از موضوع میام بیرون و دیگه درگیر اون نیستم اونجا باید به خودم یه جایزه بدم بگم که اوکی علی تو الان خودت رو نگه داشتی و گوشت رو استفاده نکردی یا مثلا نمک رو استفاده نکردی یا مثلا اینجا شکر رو استفاده نکردی خب حالا این کاری که انجام دادی مثلا من بیا بریم با همدیگه مثلا یه معجون خرما بخوریم یا هر چیزی که فکر میکنیم حالت جایزه داره به من مثلا اگر من یه عروسی رو پشت سر میذارم با تعامل خیلی خوب و اینکه میتونم رژیمم رو هم حفظ کنم می‌تونم مثلا نمی‌دونم اگه علاقه دارم به تئاتر برای خودم یه بلیت تئاتر بخرم میام که این برای این موضوع و این به خودم جایزه میدم یا اصطلاحاً به خودم میام دوام گرم برای این که ذهن من آروم آروم شروع کنه ترین بشه برای اینکه بتونه الگویی رو اصلاح کنه الگویی که به لازم دانشی میداند که غلط است اما به ادراک و اصالت درک مطلب نرسیده که کاملا شیفت اتفاق بیفته، شیفت شیفتای یک باره یا یک آنی که آدما نسبت به یک سری مسائل دارن اون ادراکش کاملا برای یک نفر پیش میاد وقتی ما ادراک برای اون پیش نمیاد با دانشی که داریم خودمون رو تمرین میدیم با الگوهای ذهنی برای اینکه بتونیم در حقیقت از پس اون موضوع نفسانی که حالا همش برمی گرده به نفس بتونیم بر بیاییم بسیار جالب و آموزنده بود و من فکر می کنم تکنیک هایی که فرمونیم در دراز مدت خیلی نتاج بهتری به وجود بیاره ولی من یک مسئله که الان برام مطرح شده جانم عزیزی که دوست دارم نظر شما رو هم بدونم اینه که در تجربه‌ای که داشتیم معمولا اون حس حواس لحظه ای خیلی وقتا ناخداگاهه و این تکنیک هایی که فرمویدید من فیل بیشتر روی خداگاه تأثیر داشته باشه درست میگم یا نه ببینید خب ما اگر چند بار اول رو یعنی مثلا بیایم ده بار اول رو بگیم که اوکی ناخداغاه این اومد و من رفتم به سمت این که مثلا برای خودم بکشم و بخورم امکان نداره من تو تایمی که این ناخداغاه برای من میاد و میرم به سمت این که شروع کنم غذا رو برای خودم بکشم امکان نداره که یاد من نیاد نه یعنی به لازم آگاه من یادم نیاد که اه علی تو گیا خاری و قر حتما من این به خاطرم میاد. باگرین که حالا شرایطم خیلی خاص باشه، حالا ما اون شرایط خاص رو در نظر نمیگیریم. ما شرایط نرمال رو در نظر میگیریم. شرایط نرمال من حتما یادم میاد که هی hey, تو تصمیم گرفتی که خوراک سالم داشته باشی، الان داری اونو زیرپام میذاری. حواست باشه. حتی تو نظریه های روانشناسی میگن ما اگر آگاهانه یعنی بفهم که اوه oh, علی تو الان گیاخور هستی، خوراک سالمه. داری خوراک غیر سالم استفاده کنی همین که من به این موضوع آگاه میشم باز دارم به اصطلاح اون لایه تاریک ذهنی یا وجودی رو دارم بینم یا اون لایه‌ای که نمی‌خوام باشه اما هست و در مقابلش قدرت و توان عملکرده قوی هم ندارم دیدنه باعث میشه که آروم آروم اون تو ذهن ما از در واقع از لایه نیمی خداگاه بیاد به لایه آگاه یعنی من ممکنه دو سه بار اولو اصطلاحا از دستم در بره ولی توی بار چهارم پنجم ششم دیگه چون من دیدمش تونستم ببینمش دیگه آروم آروم میاد به لایه آگاه من و دیگر به راحتی میتونم موچشو بگیرم اما اگه فکر میکنید باز هم یعنی این توضیحی که دادم شما کاملا موضوع براتون جا نیافتاد باز بپرسید که من کامل کنم بله الان برای من این وقتای شد خوب توضیح جالبی بود و برای من خیلی آموزنده بود ولی حالا من یک مسئله که الان برم پیش اومد اینه که آیا این که تکنیک های مختلف چقدر جواب میدن آیا این برای همه یکسانه یا نه برای هر شخصی ممکنه تکنیک خاصی نتیجه بخش باشه و حالا سریعتر جواب بده یا حالا نتیجه پایدارتر باشه این سوالتون خیلی خوب بود مرسی از این سوال خیلی دقیق و هوشمندانه ببینید قطعا تکنیک یه تکنیک جنراله و ممکنه برای ایده خیلی قوی جواب بده برای ایده خیلی ضعیف جواب بده اما چیزی که میدونیم به حال این یکی از دسترسیاستست که آدم بتونه آگاهانه خودش رو مانیتور کنه که داره بهش چی میگذره و اگر نسبت به موضوعی تصمیم میگیره چطور خودش رو در اون تصمیم متعهد بدونه برید من همانقدری که میتونم فرزن تصمیم گرفتم که خوراک سالم داشته باشم و ازش تخطی می کنم این تعهد با تعهدی که فرزن من توی یک قرارداد با شرکت با دوستم میرم و یا موضوعی که من توی ازدواج با یک رابطه عاطفی دارم تفاوتی نمیکنه. اهمیت اینها که برمیگرده به شدت و برمیگرده به مدلی که قدرت تاأثیر گذاری که تو ذهن ما و زندگی ما داره به اون قسمت برمیگرده. خب اینا همش میاد تو لایه های درونی ذهن و درونی وجود تحلیل میشه. اما ما با تکنیک هایی که میتونیم به صورت جنرال وجود داره. از بیرون دستاویزی ایجاد کنیم ایناها رو تغییر بدیم اولی اماش اینه که خب اگر یه نفر تو حالت خیلی بد بود مثلا یه زوجی تو اوج مشکلات زن و مثلا بخوان تصمیم بگیرن که حالا به سمت خوردار نیک روی بیارن خب طبیعتا خیلی براشون داره. تا یه نفر که زندگیش نرماله و این جز اولویت اول زندگیشه این که من به این سمت حرکت کردن اولویت چندومه ذهنی من هست اولویت چندومه زندگی من هست خیلی میتونه تأثیر داشته باشه که این تکنیک در من حسر بکنه یا این که نه این صرفا مثلا من الان دادگاه دارم بعد نمیدونم موضوع چک برگشتی مثلا دو میلیاردی دارم موضوع مثلا اتفادی که خیلی پر رنگن تو زندگی آدم ها یا نمیدونم با ماشین تصادف کردم بعد الان این تکنیک رو هم میخوام استفاده کنم خب طبیعتا تاثیرش خیلی کمتر و داره یا برای مثلا دوستانی که حالا به صورت خیلی پنهانی و به صورت پیو از بیماری های روانی خاص رنج میبرند که تعدادشون خیلی کمه ولی خب به هر حالال اونها اگر بخوان از این تکنیک ها استفاده کنن خب متعاقببا سختتر میتونن پیش برن با این تکنیک ها اما نمیشه گفتش که تاثیر گذار نیست حتما برای همه رده ها تأثیر گذار هست متابسته به اولویت درونی ذهنی که برای خود فرد در مورد اون موضوع وجود داره خب میتونه تاثیر رو بیشتر بکنه یا کمتر بکنه. بسیار عالی خیلی نکات مهم و جالبی رو اشاره کردین که اتفاقا خود من هم خیلی به این موضوع فکر کرده بودم که مثلا همین مثالی که زدین که اگه طرف درگیر استرس های زیاد باشه و اینکه که اولویت چندومش باشه تغییر تغذیه چون من خودم احساس می کنم که زمانی که استرس ها کلاً در زندگی خیلی زیاد باشه و زندگی خیلی کلاً نامتعادل باشه تو جنبهای مختلف اون موقع تغییر حالت تغذیه در واقع یه جوری مثل یک استرس جدید تجلی پیدا میکنه. در صورتی که وقتی زندگی تر باشه استرس کمتر باشه این تغییر تغذیه یک انگیزه است بیشتر تبدیل میشه به یک چالش یک چالش حالا که مثلا برای شخص میتونه جالب باشه اما وقتی که اولویت اولش نباشه دیگه یک چالش جذاب شاید در نظر اون شخص جذبه نکنه مگر اینکه حالا شخص بر کنه یک یک مدتی سعی کنه مثلا حداقل استرسش رو کمتر کنه یا بتونه بر کنه جنبه‌های دیگه زندگیش رو هم همراه با تغییر تغذیه بهبود بده که تکبودی پیش نره درست میگم همینطوره عادا همینطوره و کاملا خوب هم هم‌پوشانی کرد جملاتمون صحبت های رو من, من میدونم که تو این حوزه جای گفتگو زیاد هستش و جایی هم که خیلی آدم‌ها جا میزنن. حالا تو هر مدل تعهدی همین هستش که ما چطور وقتی به موضوعی متعهد میشیم یا خودمون رو میخوایم متعهد کنیم به موضوع با چه روی کردی ورود کنیم به موضوع مطلب و اینکه چطور پیش بریم چطور خودمون رو اقنا کنیم چطور ناخودایگاه خودمون رو اقنا کنیم چطور پویشی با خودمون پیش بریم پایشی با خودمون پیش بریم و بتونیم هم به لازم منطقی هم به لازم احساسی خودمونو اقناق کنیم و به اون مطلب و به اون نتیجه بیرونی و به اون خواسته درونی یا بیرونی که میخوایم برسیم کاربوردهای زیادی میتونه داشته باشه یکی از کاربورداش هم تو همین تغییر انواع صفیق زندگی ها و همین خوردار نیکستش باز هم خیلی ممنونم جایم این قهرمانی ما حتما پادکست های دیگه ای رو با همگیه خواهیم داشت و خوشحالم که شما رو در کنار خودم دارم متشکرم از لطف شما و از مشارکت ویژه شما در این قسمت پادکست برای خود من خیلی آموزنده بود و امیدوارم این پادکست برای همه شنونده ها هم مفید و آموزنده باشه سپاسگزار از حضور شما روزتون خوش خدا نگهدار نگهدار.